محمد عزیزم سلام امروز که این تابلو این ویس خواهره به دستت برسه میخوام بدونی که همونجوری که گفتم یکی از اون نکه ها تویی و خیلی از زحمات این شرکت از اجرایی از ساخت و سازی تا خیلی اتفاقاتی که این شرکت گیر کرد و تو به دازش رسیدی رو دوش تو بوده اول از همه دوستی با تو برای من افتخاریه و بعدش هم همکار بودم با تو برای شخص من یه افتخاره. امیدوارم که همراهی تو از من و مجموئی نوین الماس دریغ نکنی یه روزی بشینیم با هم دیگه راجع به امروز یعنی 9 سالگی صحبت بکنیم شاید اون روز 30 سالگی 40 سالگی یا 50 سالگی نوین الماس باشه و همینطور هم 40 50 سالگی خودمون ازت خیلی ممنونم بابت این 4 5 سالی که در خدمت بودیم تو همیشه راهگشا بودی برای شرکت و همیشه با صبر و حوصله‌ای که داشتی کمک کردی که مسائل و مشکلات بزرگ ما حل بشه امیدوارم که تو زندگی شخصی هم مثل زندگی کاریت موفق باشی و همیشه سرحال و قبره و سرزنده ببینمت با همین انرژی که امروز داری دامه بدی و افتخار آفرین اول برای تو بعد هم برای شرکت نوبین الماس باشی همین